بیا که دارم و من دوباره صحبت هم گوشگونی و بدونی دادم ات برسم ولی هرچی که رسیدی و دلتو بردم همه اینا برگره به ذات نطفت مدتیه که قلم قدرت تو دستم وای صدم محکم که بستم هرچی که کشیدم امرد دور رفتن تو واسه این منم بوده مصفت حالا صد در سر هدف در سر بشین در حسرت ازت بگذر زان تصرف کرد تو در منو پس حتما من. هستی تو گل من از وقتی رفتی شدم محکم تر تو ساختی از من تو نی مستحکم از اراده که نیشش عمق زمینه آخرش همه تو پیزه تو ذهن گفتم میتونی با من بمونی میتونی قماتو از ده دلم دخونی ولی رفتی و خواستی منو تو با هم ما نشیم و بگیرم یه گوش ماتن گفتم میتونی با من بمونی میتونی قماتو از بلی رفتی و خواستی من و تو با هم ما نشیم و بگیرم یه گوش ماسم الان که دارم وث می خونم بند بدون بگری های خودم می کنمم خز من تاچ رو بتم دیدم یه دفعه جسشون شخصی که میگفتش همیشه حد حالا خاطرات جدایمون هرچند بدم ولی خوب من همشونو کردم چپاندفن هم که توی آبادی قلبم زخم من از اونا بوده فقط تفا بدون که تو همیشه اسیر حواسی داره بازی میده تو رو یه کسیف عوضی آره دیدی یا خرشممون پسسته پلیین کاری کرد که اشق از دسته پر قصد بود آخر ای منی من گفتم میمونم تا دمه مرز ولی خوب تو دو دلت دوچار وسوسه شده ناوت میخواسته حوثو مزvesه کنه <متحد> گفتم میتونی با من بمونی میتونی قمو تو از دلم بخوری ولی رفتی و خاصی منو تو با هم ما نشیمو بگیرم یه گوش ماتم <متحد> گفتم میتونی با من بمونی میتونی قمو تو از دلم بخوری ولی رفتی و خاصی منو تو با هم ما می بگیرم یه گوش مات شنیدم گفتی با رفتن بهم نیست ولی زندگی تجربه بس تو میگذری گفتم با منی تو داشته باش گرور زیاد نه که فکر کنی اگه بری دوباره میاد قلبم از این کلمات ما روی گرفت دیگه نمی کنمم و طرمون بهده شناختم و گرفتم درس ابرا تو نییارم رس توی پس سبت یه منجلاب روابط بزرگ و کوچک نخواست اسیری از زیری افتادیم تو مسیر تو زگیده دسته تا چرا دیگه بسیم از بود. فکر کنی بیداری ولی رفتی از اوور به خیالت که باهاشوی اوج ولی ازش نداری باستش یک گوشه چشم به یاد روزای قشنگی که رفتن حالا تا تو خاطراتت هستم به تو گفتم حرفامو هرچند سری حواظت باشه که یه وقت تو همارد دست نری پس بیاد تو همورو تو بطل و که بدون کلمات میشه قطع نخوا